ترسم که اشک در غم ما پرده در شود وین راز سر به ما به عالم سمر شود گویند سنگ لعل شود در مقام سر آر شود ولیک به خون جگر شود خواهم شدن به می گریان و داد خوا که از دست غم خلاص من آن جام اگر شود از هر چرآن تیر دعا کردم روان باشد کزان میان یکی کارگر شود ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود از کیمیاه مهر و زرگشت روی من آری به یمن لطف شما خاک ذر شود در تنگ نای حیرتم از نخبت رقیب یارب مباد ان که گدا معتبر شود بس نکت غیر حسن بباید کتاب کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود این سرکشی که کنگره کاخ وعث راست سرها بر آستانه او خاک در جوزد حافظ چنافه سر زلفش به دست توست دم در کشر نه باد سوار را خبر شود